در جمله قبلی که کنده بودیم فرمود فس افی کد, فس افی کد خک ولا تکن خاز من لغیرک و ازا خودی تل قصدک کن اخش ما یکون لردک فرمود کار بکن و کوشش بکن و زحمت بکش برای درووردن پول کار بکن و زحمت بکش وقتی خزم نداره غیر نباش برای دیگران پول جمع نکن ولا تکن خاج من به در راه خدا هر چی میتونی خرج کن خیلی خوب اینا رو عرض کردیم پشت سری این قدیمات فاذا خودی تل قصدک اگر تو راه پیدا کردی به عدالت و اعتدال و اقتصاد یعنی راه یفتی که عملت اونی اعتدال و اقتصاد باشد اذا هدی تل قصدک فکن اخش اما یکون لربک خاشه ترین حال تو در در مقابل خدای تعالی باید اون حال باشه. دمای تو مسی حال اعتدال و عدل پیدا کنی، و خدا به تو چنین توفیقی داد که حال اعتدال پیدا کردی، این تو بالاترین نعمت رو گیر آوردی، باید خاشه ترین فرد در مقابل خدا باشی. چنین نعمتی به تو داد قبلا این خیلی خیلی قبلا ارز کردیم اصلا از اقراض و هدف‌های دین که اصلا خدای تعالی دین رو برای چی فرستاده عدل است خدا تو قرآن برموید ارسلنا رسولنا بالبگینات و انزلنا محمول کتاب و نیاکوم ناسو بالقوه است ما پیمان در فرستادیم کتاب فرستادیم چی کردیم چی کردیم برای اینکه مردم قیام به عادل کنند. بله یا یه لشادی تو رو یا یه لشادی نامانو کم و قضا بالتوست شهدا ال الله. از شد ولو علا انفسکم از الوالدین و قیام به عدل کنید و به حق شهادت بدهید گرچه بر ضرر خودتون یا بر ضرر برادر و خواهر و پدر و مادرتون باشید که این قوامین ابل قسط این اطلاع مطلوب دین این بوده که مردم قیام به عدل کنند و در مقام عدل عدل در اخلاق عقل عدل در رفتار عدل در اعمال عدل در اعتقادات عقل در فرد و عقل در, ج... عدل در جامعه ازا خودی طلقستک اگه تو هدایت شدی و به این مرحله از کمال رسیدی یعنی به مرحله عدل رسیدی یعنی که هدف انبیا بوده تو پیداش کردی؟ و خدای تعالی این نعمت و لطف رو به تو کرد و تو رو به این مرحله از کمال رسوند فکن اخش اما تکونگل ربک خیلی خاشه کنش زیاد بالاترین نعمت رو خدا به تو داده خیلی خاشه کنش ترین حال تو باید اون حال باش شاید این احتمالا ارز میکنم ولی شایدم اقتصاص نداشته باشه ولی شاید نظر حضرت به قبلی هم باشه به خصوص فرمود فس اکد حک ولا تکن خازمم لغیرک خیلی فعالیت بکن برای کار کردم خازن برای غیر هم نباش ولی اقتصادم رعایت کن اعتدال رو هم رعایت کن اعتدال پیدا کن در همه شون ولی اعتدال بکن در پیدا کردن و اعتدال بکن در خرج کردن و احسان کردن چون خود اینم دستور داره هم پول پیدا کردنش رو میان روی و اعتدال بکن که زحمت بکش کوشش بکن ولی ژورنالیسم نزن کسی شب و روز میمیدونه پول تمام همت و مقصدش پوله از هر کجا که به دست بیار میخواد این رو به دست بیاره نه این مطلوب ولو هلاله حلالش. هلالش هرونش که هرونه حلالش هم کوشش بکن زحمت بکش ولی خودتو نکوش به تعبیه بنده اعتدار اعتدار رعایت و برای دیگران زخیره نکن یعنی در راه خدا خرج کن ولی بازم اعتدال خدا تو قرآن ورمید لا تجعل که مغلولتم الى اونی ولا تفسدها کل للبست فتقودم ندن من محصورا خرجکن خرج خرجی نهگو الظ ا انفبول أنفقوا لم او ولم یقتروا تو رو و کار می قوام اون که میخوان خرج کنندن نه ااصاف میکنن نه تنگی بر از اه خرج میدن نه باخورلی میکنن نه غ خرجی میکنن حد اعتدال و ح بسط. پس این هم در پول پیدا کردن اعتدال باید کرد هم در خرج کردن برای خودم هم خرج کردن در راه خدا دیویل خرجی نباید کرد که حالا میخونم روایاتش رو یکی دیتا از میشود این که و کلی یا اعتدال در روایتی حضرت عسکری سلام الله علیه فرمود این لسخا این مقدارن سخاوت و بخشش حد داره انزاد الا و فهو صرفون اگه زیادی از اون حدش بشه ای اسراف اسمش این سخاوت نیست ملحزم مقدارن حزم و احتیاط خوبه احتیاط بکنیم نکنه که تو چاله بیفتیم حواسن جمع کنیم احتیاط خوبه ولی احتیاط حد داره اگه از حدش گذشت میشه جبن ترسونی این نلل هزم حدن مقدارن فا زاد علی فا جبنن. اقتصاد مقدارن این زاد علیفه فهو بخلون اقتصاد خوب میان روی و اعتداد اقتصاد در خرج چجوری تو خونم خرج کنم، اقتصادی خرج کن ولی اقتصاد حد داره اگه خیلی خیلی اقتصادی بخواد بشه میشه بخ اسم اقتصاد در میان. و مقدارن، انصاب علیفه و تحبور شجاعت حد داره اگر زیاده از حدش باشه این تحور اسمش بیباکی اسمش پس مطلوب چیست؟ مطلوب اعتدال فرمود لا بخل ولا اطلاف خیر الامور اوسط ها رسول الله سوالی و علیه لا بخل ولا اطلاف خیل امور اوسطها نبخل کن تو تلف کن حد و سر پس بنابراین انسان باید در همه کارش اعتدال باشه و حد و که اقتصاد و قصدم در روایات و همین معناست با بول اقتصادش لعبادت یعنی در عبادت میانه رو با. و همچنین اقتصاد در خرج اقتصاد در انفاق اقتصاد در فلان به عنوان اقتصاد یعنی میانه روی اعتدال من آگر این اینه که من باید در کاران معتدل باشم از نظر پول پیدا کردن چقدر فعالیت کنم باید سعی کوشش بکنم ولی چقدر از صادقی رو میفرموید و مرد فلیه کن طلب کن معیشه فوق کسب المغیه و دون کسب الحریص باید فعالیت برای زندگی بایستی فوق کسب المغیه و دون کسب الحریص یعنی آدم بیکاره و تنبال و بی مثلا ارزه باید بالاتر ازی باشی باید فوق این باش. حالشو نداریم و ببینو و ایمانیست. باید فعال و کوشش کنی درست اصابه فوق کسب نوغیه ولی دومن کسب الحریص حرث نبینو که خطبی تو کشی پول دارو بردن نه این کار رو نکن از این اینکه دوید لا یزید الهرس لا یزید في الرزق ولیکن به القدر هرس روزی آدم زیاد نمیکنه، ولی قدر و عرزش انسان رو پایین میاره الهرس نوغ فی کفیر من از این هرس که آدم این تو گناه ها دیگه بین این میگه به این راست میگه به این که هم میفروشه به این که میفروشه به حالا حلالش هم همینجوره بلاخره برپرده به گناه پول بلیه با در بیاره دید همه مهمتش هم عرض به اینکه که رمان حسین صحان والی در روایت میرانند لا تو جاهد فر رزق جهاد العبور و روزی به آوردن کوشش نکن مثل اینکه جهاد با دشمنت داری میکنی تو میدان جنگ اینجور مجاهده کردن اینجوری نبود جهاد العبد ولا تتکل علا القدر اتکال المستسلم اینجا اینطوری شونا نگم خب هلچی مقدر درشت نیرسه یا نگمی خبی و تسلیم هالی شود، هالی بیچاره خوشه من. نمی‌بگردم، نمی‌خورم فاین نه ابتقاء ارزش، کمی نسونم، سونم چی نسیم؟ فاضیات کمی برای ارزی، سونم چرا که و من؟ ولی فی من ال واستعمال و استعمال الهز جالب من للمعافی. افت و پاک و عفیف بودن. اون است که در راه طلب و کوشش فعالیت بکنی ولی هرس نزنی حد اعتداء این از اون اما نسبت به احسان انفاق کردن چقدر انفاق کنم هرچی دولار میری انفاق کنم راه خدا نه یه آدم های خیلی خیلی خوب هستند که اگر تمام پولشون هم خرج بکنن و چوب وزن فکرشون و حالشون تغییر نمیکنه. ما حسابو شد جداست و بونا کنه. ما چی باید بکنیم؟ من عوامون واسه کلاسی. ما تفسیر نیست. اولون لم ينسفوا و لم یقترو و کانوا بمدالکا یه کسی قزم شد این حضرت صادق (ع) این آیه شریفه رو کند فرمود به او و حقه یوم خسعه ولا تسرفوا ان الله لا يحب المصرفین یعنی بکارید آی کاری پای و, و روزی که درمی‌کنید حقش رو بدید یا زکاتی به تو واجبه بدید یا یعنی مستحباتی داره بدین ولا تصرفو اسراف نکنید خدا اسراف کنندها رو دوست نداره و وقت و میوامد به بنده خدای بود اسمش فلان، و این هر چیز را اکمی کرد بود که در اونی کرد تمام رو را در راه خدا میداد بعد خودشو زن بچهش گرست نمی نشستن حضرت صادق خدای اسم اسراف گذاشته آتو حقهو یام حسابه ولا تو صرفو کنو الله لا يحب المسرفین حقی که خدا معین کرده ببین ولی اصراف نکنید پس بنابراین هم در پول پیدا کردن رعایت کن و هم در خرج کردن و حتی در راه خدا رو را کن لا تاکونوا تق... کل باث فتقو دم لو ام محسور بعد بیشو کورس نموتش نباد بعد چم چکار کنم بعد اون چور بعد فلان به اعتدال و میانی رویی و ازا اگر به حد اعتدال رسیدی و توانستی در اعمال و رفتار و اخلاق و که دارد آبل باشی و معتدل باشی فکن اخش امام تکون لربک. بدون خدای تعالی بالاترین نعمت رو به تو داده خدای تعالی بالاتر نعمت رو به تو داده باید در مقابل خدای تعالی به این نعمتی که به عدل موفق شده ای خیلی خاشه باشی و خیلی شاکر باشی ما خیلی آدم خوبی که باشیم شکس که میخوانیم بکنیم در مقابل نعمت دنیا شکر میکنیم الحمدلله خدا به من پول داده به من صحت داده به من خانه داده به من فرزند و امسال ملخش شکر کردیم ما الحمدلله که خدای تعالی به من نعمت اسلام داده به من نعمت تشیع داده به من حالت عبادت داده به من حالت اخلاص داده سه اینو جزی نعمت به این نعمته خدا و تعالی تو قرآن به هیچ میدن نعمته منت نزاشته سر مردم فقط نعمت اسلام رو منت گذاشته از میشود نینجا ما آیین شریفه چیه من مولا و علا و رس... سویز به عصفی هم رسولم فقط من مولا و علا الان ممنون به عصفی هم رسولم و یمنم علیکان اسلام قلوبیم و یمنم علیکم این, این فرمود این دانی عایه فزکر الله معناش چیز یاد کنید نیمتشهاي خدارا فرمود آلا الله ولایت ناس اگه اینیداری یادت باشه که خدا بالاترین نعمت رو به تو داده این نعمت های نعمتهای معنویاست شکر بر اینها و حمد و بر اینها خیلی اولاست تا نسبت به نعمتهای ظاهری همهشو باید شکر کرد که اینها هم این جمله ای رو میگه به زاهدی تلقسته که اگه این کمال رو پیدا کردی و خدا تعالی تو رو دانسته و چنین کمالی به تو داده که تویستی عدل دوارزی و تدل در کارت باشی خیلی باید خواشه باشی چون به مقصد نبوت رسیدی ما ان، از ساده می ما ان ام الله علا عبد نعمتی خدا بالاتر ازی به بنده ای نداره که الله یکون فی قلبهی ما الله غیره تو دلش غیر از خدا دلبستگی به کسی نداشته باشه این بالاترین نعمت خوبه کسی این حال داشته باشه که از همه موانع دلش به خدا بسته بالاترین نعمت رو خدا به این داده این چه کنه اگه خونه به من بده صحت به من بده زن بده ماشین به من بده خیلی شکر می اگه اهل شکر باشم بالاترین نعمت رو به من داده از می ببین به اینکه که حضرت کازم سلام الله علیه می من حمید الله علی النعمه فقط شکره کسی که همد کند خدا را بر نعمتی شکر کرده ول همدو افزن می تلکن نعمه حواظت جمع باشه همهی که میکنه از اون نعمتی که من دادن بالاتره. مطلع خودش بر خودش خدا به من مثلا فرض بفرمید که پول داره من واقعا تشکر میکنم الحمدلله حضرت کازم برانه الحمدلله که گفتی است که به مراتب اهمیتش از اون پولا بیشتر اگر اگه اغلب یعنی به چنین توفیقی به تو داده که تونستی هم به خدای تعالی بکنی و شکر خدای تعالی بکنی این نعمت بالاتر از این است که برانه اون به شکل میکنی مزاز که از نشات تورویاد داره به نوسا کتاب شد که ای موسی اشکرمی حق شکری یا حمدی من شکر کن حق به شکر کردن، اونسا ارز کرد خدای من چگونه می تو رو شکر کنم حق به شکر کردن، زیرا تا میگم الحمدلله خود این الحمدلله که میگم یک است که تو توفیقش فیقش رو به من دادی خود این الحمدلله هم بایستی یک شکر دیگری براش بکنم. شکر دوم رو که کردم خود او هم یک نعمتیست که تو دادی با شکر سفن باید بکنم و که من میتوانم حق شکر تو رو عدا کنم فرمود حالا که فهمیدی که نمیتوانی حق شکر مرا ادا کنی الان است که حق شکر مرا رو کردی حضرت کازم سلام و عالمی من نعمتی که خدا به تو داده شکر که اون شکرش بالاتر از اون است که بهت دادن بالاتر از اون است که بهتون تو روایت که وقتی وارد میشه اون وقتی یه خورده یا اگه اهلش باشه بیشتر از یه خورده آدم خجالت میکشه. تو روایت داره که کسی نماز مخونه و بعد از نماز سجده شکر میکنه مصحبه خدا او حالا خطاب میکنه به ملائکه به بنا... که من بنده من نماز خونده حالا شکر مرو میکنه در مقابل این سجده چی بهش بدم یه ملکی از میگوند خدای رحمت برای مغرر کنی که میگه مغفرت مغرر کنی که میگه گرفتاره دنیا و آخرت چه اصلاح کنی که میگه کن هر کی که میگه میگه خود میترده برونده خدای تعالی میگه مقبی این حق ای نیست حقی ای از این وقتی همه ملایکه هر هست هستش هر چی قول بنده بلد بودن میگن بعدا از میکنم خدای ما نمیدونیم چی حق اینه که تو بش بدی خطاب میرسد که این شکر کرده برای من حق این است که من هم از این تشکر کنم حق اینه خوب بنابراین این پس شکر یه چیز بالاتریه اگه من یه چنین سعادتی پیدا کردم که واقعا تشکر کردم خدا رو شکر میکنم بر نرمته بهورد خدای تو رو شکر میکنم بر نعمت خدای اسلام خدایطور رو شک... این شکری که در میکنم بالاتر این شکری که در میکنم فزیتی بالاتر و کرامتی بالاتر تازه چی شچنم به توفی غص هم به من به لط اوست که در برای من کرده و من رو موفق کرده به این کار. ارزمی شود که بله حالا دیگه اونها تمام اون کلمه رو هم تمام کردیم زوهری که یکی از دوستان حضرت شاید ارزمی شود زنگل آبدین سامو الله علیه هست میگه با زنگل آبدین با هم دیگه وارد شدیم در پیش عبدالملک مربان وارد شدیم در پیش عبدالملک ملک و او دهزار کرده بود عزتر. تا چشم عبدالملک برای اولین بار به جمال و قیافی حضرت سجاد افتاد و آثار سجودی که در پیشانی حضرت دید گرفه این حالش رو قراره جلب کرد و مقلبش کرد این عبدالملک را ارز کردی ابن رسول الله از می شود به اینکه که انت بزعت رسول الله تو پاره تن پیغمبری قریب و نسب نسبت به پیغمبر نزدیک است ذو فضل اوین تو دارای فضیلت های بزرگ هستی لقد اوتیت من الفضل و العلم و دین و الوره مالم یوته مثلک خدای تعالی از فضیلت و علم و دین و وره چیزی به تو داده که به کسی نداده نه مثل تو و نه قبل تو نگر از سلف صالحین تو یعنی به تو و به تو و نداده کسی اینها رو بعد شروع کرد به مدهز این رو کردن حضرت سران گوش کرد بعد سرش رو بلند کرد و کن کل ما زکرته و وسفته من فضل الله و تعییده همه این که گفتی همه فضل و نعمت خداست فعی نشک رو از من نمیپرسی که اینا رو چگونه شکر شک کردی این نعمتها تمام اینای که تو گفتی از علم و برع و تقوا و فضیلت و امثال زالک تمام الطاف خدایت آلاست فعی نشکرو چه اینش شک کنم من این نعمتها را بعدم زندرابدین فرمود به این که کار رسول الله صلی الله علیه و آله یعقف فی السلا حتی ترم قدمان رسول الله اینقدر تو نماز بایستاد پاهاش ورم کرد اینقدر روزه گرفت که دهانش خوشکید فقیله یا رسول الله علم یافر الله لکه ما تقدم من زنبه که و ما تأخر. آیا خدا گناهان تو رو نوخشیده چرا رو زحمت میکشی فیقول افلا اکنون عبدم شکورا رسول الله فرمود آیا من نباید بنده شاکر خدا باشم این نعمت هایی که به من داده ازا هدی تلقستک فکن اخش اما تکون لردک اگه توفیق پیدا کردی کارات به عدل شد رو میزان شد حالتت حالت خوشوع باشه و در مقابل خدای تعالی خدایت رو شکل می که منو به این حال هدایت کردی من این اگر رسیدی به این کمال بالاترین نعمت رو گیر آوردی ولی بدون شکری هم کنی بالاتر از همین کمال است. و شکر افضل میند. زاهدی طلب است یک شكون عرض می شود اخش اما یکون خیلی خوب بس تمام شد. اللهم صلوات علیه و هایی که اول خوندم از می شود اینکه در صفحه 137 مراجعات. اون روایت انتمنی به منزلت خارونم و مونسا. 137 کتاب مراجعات. و همین رمایات انتمنونی به منزلت هارون در صفحه دویست و و چهار جلد سی و هفت قضیه سعدلقاس در صفحه دویست جلد یک تفسیر برهان قضیه معاقیه در صفحه صد و مراجعات آرومه که گفته بود او رو از علیه فوز دیگه چی آوام؟ قضیه مواخات که برادری انداخت صفحه 147 مراجعات قضیه صد دل عباب با 149 مراجعات و اینا آزده تو بهار هستش ولی باید پیدا کرد بنده اینو رو از دو مراجعات نمیشه این راجع به اینجا حتی تمام دیگه چی مقایم بلا آقا بله ببرمین شما چون من ممکنه تردیب این نه لسخای صفحه دویست و هیجده جلد هیجده بهار قدیم بلا من از در ذهنم بود که بنویسم ولی این نه من از خارج کندم طلب و که فوق کسب المزیه پونسد جلد دو وسائل چاپای قدیم ولی اگه بخواد پیدا کنید از این چاپای جدید باقی کتاب دوی رو پیدا کنید مقدمان طلبه اوائل کتاب دوی باقی اجمال فلطلب یا فلکسب علیه رسولای یزید و فررس سی جلد دو مستدرک الحسین علیه السلام 420 مستدرک لاتو جاهد فرز جهاد الغالب در یه نسخه به روایت بعدیش جهاد العدوب هم داره 420 جلد دو مستدرک آتو حقهو یام حساده ولا تصرفو صفحه 144 جلد سه وسائل های سجلدی. هم ناستیم هم زیدون ما انعمالله علا عبد اجل روایه صفحه ده جلد یک مستدرک من حمد الله علنه ما فقط شکر و و افزل صفحه سد و است به نام حقائق مال فیل حقائق حقائق کتاب او فی کواب ترجومی عربی عبدالملک عبدالملک سفیر 15 جلد یک یا چهارده یا 15 مستدرک جلد 1 مستدرک صفحه چهارده اللهم صل محمد محمد